فصل سیزده هم. در همان روز عیسی از خانه خارج شد و به کنار دریا رفت و در آنجا نشست جمعیت زیادی به دور او جمع شد به طوری که او مجبور گردید سوار قایقی شده در آن بنشیند در حالی که مردم در ساحل دریا ایستاده بودند عیسی مطالب بسیاری را با مثل با آنها گفت او فرمود برزگری برای پاشیدن بعض به مزرعه رفت. وقتی مشغول پاشیدن بعض در مزرعه بود، بعضی دانه‌ها در وسط راه افتادند و پرندگان آمده آنها را خوردند. بعضی از دانه‌ها روی سنگ لاخ افتادند و چون زمین عمقی نداشت، زود سبز شدند. اما وقتی خورشید بر آنها تابید، همه سوختند و چون ریشه نداشتند، خوش شدند. بعضی از دانه ها به داخل خارها افتادند و خارها رشد کرده آنها را خفه کردند. بعضی از دانه ها در خاک خوب افتادند و از هر دانه صد یا شست یا سی دانه به دست آمد. هر که گوش شنوا دارد بشنود. پس از آن شاگردان نزد عیسی آمده از او پرسیدند چرا به صورت مثل برای آنها صحبت میکنی؟ ایسا در جواب فرمود، قدرت درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده، اما به آنها عطا نشده است. زیرا به شخصی که دارد بیشتر داده خواهد شد تا به اندازه کافی و فراوان داشته باشد و از آن کس که ندارد حتی آنچه را هم که دارد گرفته می شود. بنابراین، من برای آنان در قالب مسئله صحبت میکنم. کنم. زیرا آنان نگاه میکنند، ولی نمیبینند. و گوش می دهند ولی نمیشنوند و نمیفهمند. پیشگوی اشعیا درباری آنان تحقق یافته است که میگوید پیوسته گوش میدهید، ولی نمیفهمید. پیوسته نگاه میکنید، ولی نمیبینید. زیرا ذهن این مردم ک گشته، گوشهایشان سنگین شده و چشمانشان بسته است. و الا چشمانشان میدید و گوشهایشان میشنید و میفهمیدن و بازگشت میکردن و من آنان را شفا میدادم. اما خوشا به حال شما که چشمانتان میبیند و گوشهایتان میشنود. بدانید که پیامبران و نیکمردان بسیاری آرزو داشتند که آنچرا که شما اکنون میبینید ببینند و ندیدند. با آنچه که شما میشنوید بشنوند و نشنیدند. پس معنی مسئله برزگر را بشنوید. وقتی شخصی مژده پادشاهی خدا را میشنود ولی آن را نمیفهمد. شیطان میآید و آنچه را که در دل او کاشته شده می رو باید. این بس ریز که در وسط راه افتاده بود. دانه که در سنگ لاخ می افتد، مانند کسیست که تا پیام را می شنود، با شادی می پذیرد، ولی در او ریشه نمیگیرد و دوام نمی آورد. پس وقتی به سبب آن مژده زحمت و آزاری به او برسد، فورا دل سرد می شود. دانه که به داخل خارها افتاد، مانند آن کسیست که پیام را می شنود، اما... نگرانی های زندگی و عشق به پول آن پیام را خفه می کند و سمر نمی آورد. و دانه کاشته شده در زمین خوب به کسی می ماند که پیام را می‌شنود و آن را می‌فهمد و صد یا شهست یا سی برابر سمر به بار می آورد. پس از آن ایسا مسئله دیگری نیز برای آنان آورده گفت پادشاه آسمانی مانند این است که شخصی در مزره خود بصر خوب کاشت اما وقتی همه در خواب بودن، دشمن او آمده در میان گندم تلخه پاشید و رفت هنگامی که دانه ها سبز شدند و شروع به رشد و نمو کردند تلخه ها نیز در میان آنها پیدا شد دهخانان پیش ارباب خود آمده گفتند ای آقا مگر بعضی که تو در مزرع خود کاشتی خوب نبود پس این ها از کجا آمدند او در جواب گفت این کار کار دشمن است دهقانان به او گفتند پس اجازه دهیم ما برویم و ها را جمع کنیم او گفت خیر چون ممکن است در موقع جمع کردن آنها گندم ها را نیز از ریشه بکنید بگذارید تا موسم درو هر دوی آنها با هم رشد کنند در آن وقت به دروگران خواهم گفت که ها را جمع کنند و آنها را برای سوخت ببندند و گندم را نیز جمع کرده در انبار من ذخیره کنند. عیسی یک مسئله دیگر نیز برای آنان آورده گفت: پادشاهی آسمانی مانند دانه خردلی است که شخصی آن را می‌گیرد و در مزرعه خود می‌کارد. دانه خردر که کوچکترین دانه هاست، پس از آن رشد و نمو کند، از بوتهای دیگر بزرگتر شده به اندازه یک درخت می شود، و آنقدر بزرگ است که پرندگان می و در میان شاخه هایش آشیانه می سازند. ایسا برای آنان مسئله دیگری آورده گفت، پادشاهی آسمانی مانند خمیر مایه که زنی بر می دارد، و با سه پیمان آرد مخلوط می کند تا تمام خمیر ور بیاید. ایسا تمام این مطالب را برای جمعیت با مثال بیان می کرد و بدون مثل چیزی به آنها نمی تا پیشگوی نبی تحقق یابد که فرموده است من دهان خود را خواهم گشود و با مثلها سخن خواهم گفت. و چیزهایی را بیان خواهم نمود که از بد به خلقت عالم پوشیده مانده است. پس از آن ایسا مردم را مرخص کرد و خودش نیز به منزل رفت. شایردان ایسا پیش او آمده گفتند معنی مسئله تلخه مزرعه را برای ما شهر بده. ایسا در جواب گفت کسی که بذر نیکو می پسر انسان است. مزرعه این جهان است. و بذر نیکو تابعین پادشاهی خدا هستند و توخمهای تلخه پیروان شیطان می باشن. آن دشمنی که توخمهای تلخه را کاشت ابلیس است و موسم درو آخر این دنیا می باشد و دروگران فرشتگان هستند. همانطوری که دروگران تلخه را جمع می کنند و می در پایان این جهان هم همینطور خواهد شد پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر کس را که در پادشاهی او باعث لغزش شود و همچنین همه بدکاران را جمع میکنن و در کوره‌ای مشتعل خواهند افتاد جایی که اشک می‌ریزند و دندان بر دندان می‌افشورند در آن زمان نیکان در پادشاهی پدر خود مانند خورشید خواهند رخشید هر که گوش شنوا دارد بشنود پادشاهی آسمانی مانند گنجی است که در مزرعی پنهان شده باشد و شخصی تصادفا آن را پیدا می کند او دوباره آن را پنهان می کند و از خوشحالی می رود تمام اموال خود را می فروشد و برگشته آن مزرعه را می خرد. پادشاهی آسمانی همچنین مانند بازرگانی است که در جستجوی مرواریدهای زیبا بود. وقتی که مرواری بسیار هایی را پیدا کرد، رفته تمام دارایی خود را فروخت و آن را خرید. و نیز پادشاهی آسمانی مانند توریست که ماهیگیری آن را در دریا انداخت و از انواع ماهی‌های مختلف صید نمود. وقتی تور از ماهی پر شد، ماهیگیران آن را به ساحل کشیدن و آن وقت نشسته ماهی خوب را در زنبیل جمع کردند و ماهی های مصرف را دور ریختند. در پایان این جهان نیز چنین خواهد. فرشتگان می و بدکاران را از میان نیکان جدا ساخته آنها را در کوره های مشتعل می اندازن. جایی که گریه و دندان بر دندان فشردن وجود دارد عیسی از آنها پرسید آیا همه این چیزها را فهمیدید شاگردان پاسخ دادند آری عیسی با آنان فرمود پس هرگاه یک معلم شریعت در مکتب پادشاهی آسمانی تعلیم بگیرد مانند صاحب است که از گنجینه خود چیزهای تازه و کهنه بیرون می‌آید وقتی ایسا این مسئله ها را به پایان رسانید، آنجا را ترک کرد و به شهر خود آمد، و در کنیسه آنجا طوری به مردم تعلیم داد که همه با تعجب می‌پرسیدند، این مرد از کجا این حکمت و قدرت انجام موجزات را به دست آورده است؟ مگر او پسر یک نجار نیست، مگه نام مادرش مریم نمی باشد؟ آیا یعقوب و یوسف و شم اون و یهودا برادران او نیستند و مگر همه خواهران او در اینجا با ما نمی نمیباشند پس او همه این چیزها را از کجا کسب کرده است پس آنها او را رد کردند عیسی آنها گفت یک پیامبر در همه جا مورد احترام است جز در وطن خود و در میان خانواده خیش. عیسی به علت بی ایمانی آنها موجزات زیادی در آنجا به عمل نیابند